من ترازو فروشم من ترازو فروشم در فروشگاه من هر گونه ترازوی هست و برای کشیدن هر چیزی نیاز به ترازوی دیگر است. هر کسی از من ترازوی دیگر میخواهد یکی ترادوی میخواست که با آن خدا را بکشد یکی ترادوی میخواست که زیبایی را بکشد کم کسانی نیز بودند که ترادو برای سنجش مردمی میدستند و چندی پیش یکی ترادو برای کشیدن ایمان از من میخواست چون در زادگاهش همه دم از ایمان می زدن یکی می‌خواست بداند چقدر خوشبخت است و ترادوی خوشبختی سنج می‌جست یکی می‌خواست بداند که چقدر می‌تواند تحمل تحقیر تحمل تحقیر کردن خود را بکند و ترادو برای قدرت تحمل می‌خواست یا حتی یکی نمیدانست چه اندازه احمق و جاهل است و من چون این ترازو را نداشتم به جای آن ترازوی خیالات و تصورات را به او فروختم یکی میخواست بداند چقدر واقعیتگراه هست و دیدم که او شوق بیاندازه در پشوردن رؤیاها به هم دیگر دارد و روزی به آنکه که ترازوی حقیقت کشی میخواست ترازوی خدا کشی فروکتم. و فردا با خشم و اعتراض ترازو را بازگردانید و گفت برای خدا سنگ دیگری لازم است که حقیقت و یکی ترازوی انسان کشی لازم داشت و من ترازوی روانسنجی و شخصیت سنجی و شهرت سنجی به او پروکتم و او فردا من گفت که انسان که اندازه ندارد به هر روز به وزنی است و وزن او با دگرگون شدن یک فکر سبک و یک خیال باریک و یک احساس نازک ناگهان به کل عوض می شود و وقتی ترازوی فرد کشیدن را به او دادم و وقتی ترازوی فرد کشیدن را به او دادان فردا دیدم که با آن جامعه را میکشد و جامعه و جهان را یک پیکر و فرد می‌گیرد و یکی می‌خواست حباب قدرت و شهرت و زهد را بکشد و یکی می‌خواست حباب قدرت و شهرت و زهد را بکشد و ترازویی برای وزنهای بسیار سنگین میخواست. ولی, شاهو ولی شاهین ترازوی که خرید از جا جمع هم نخورد. و او در برابر این مردان قدرت و شهرت و زود با دست پاچگی پودش تلبید که ترازویش خراب است و ترازو را پس گردانید ولی من نپذیرفتم. چون با اون چون او عمی انگاش آنها همه سبک وزن بودند یکی دروغ سنج میخواست و من ترادی به او فروختم که در دروغ را سبک و راست را سنگین نشان میداد. ولی او با دروغی که از آن خوشش می آمد ولی او با دروغی که از آن خوشش میآمد در آن ترازو سنگین مینمود و با راستی که از آن بدش میآد در آن ترازو سبوق مینمود. و اختراع ترازوی برای کشیدن نیازها چندان پیشرفت نکرده. بود و اختراع ترازوی برای کشیدن نیازها چندان پیشرفت نکرده بود. و نوار میان، نیاز و بینیازی بسیار دامنه دار بود و احساس هر نیازی رابطه وارونه با ضرورت آن نیاز داشت چه بسا که یک نیاز بسیار ضروری با احساس بینیازی از آن همراه بود و یک نیاز که ضرورتی هم نداشت احساس ضرورت تام پدید می آورد. ولی سیاستمداران و اقتصاددانان تصویری از انسان اقتصادی ساختند و به همه آموختند که همه به همین تصویر آفریده شدهاند و فروش ترازو برای دستورهای متضاد که پیامدهای مسابی داشتند و دستور واحد که پیامدهای متضاد داشتند بسیار دشوار بود. و بسیاری می اندیشیدن که عمل نیکشان زاده از فریبی است و بسیاری می اندیشیدن که نیکی در عملی که به فرمان خدا میکنند نیست بلکه خدا سپس به آن, آن نیکی را می و ترضوع که خیلی حساس و دقیق بود ترازوی تصاوی و نیکی و سود بود ترازوی تصاوی نیکی و سود بود این ترازو نشان میداد که هران چه سود دارد همان اندازه هم نیک است و هران چه نیک است همان اندازه هم سود دارد و ترازوهای گوناگونی از کارخانه ویژه خدا می که طبق درخواست هر آنچه نیک بود با ده یا ده برابر سود داشت یا صد برابر سود داشت و ترازوی هم خدا ساخته بود که هدیه میدادیم و در آن یک نیکی بینهایت سود داشت و همه به دنبال دریافت این ترازو بودم که فروشش برای من هیچ سودی نداشت ولی آنها با یک عمل نیک در سراسر عمر حزینه همه پلیدکاری ها و ریاکاری ها و تباهکاری های خود را میپرداختن و آنچه قلغله خریدارانش اوشم را کر میکرد و دکانم را بس تنگ کرده بود و هرچه میفروختم باز کم میآوردم ترازوی عدالت بود و همه ترادوی عدالت را از من میخریدند ولی سنگ وزنه را خودشان در خانه داشتند و همه ترادوی ادالت را از من میخریدند ولی سنگ وزنه را خودشان در خانه داشتند یا خودشان مناسب با هر فرصتی اون واحد سنجش را میساختند یا با سنگ وزنه گروه و حزب و عقیده و ملت خود همه چیزها را میکشیدم و برای خود پرستی نبود فقط میشد خود را کشید و سنجید خود هرچه بزرگتر میشود بی نیاز از پرستیدن میشد و خود هرچه کوچکتر میشد بیشتر نیاز به پرستیدن خود داشت از این رو خود بینهایت بزرگ از پرستش خود منفور بود و خود بینهایت کوچک خودپرستی بی نهایتش رو اوج عشق میخواند و میگفت که خدا هم در آقا دوچار همین عشق بوده است و بی خودپرستی نمیتوانست زندگی کند و همیشه خود را به نام خدا میپرستید گرچه در پیش خدا خود را هیچ میشه این بود که خود بینهایت کوچک همیشه فخر از خدایی میکرد و خود بی بزرگ شرم از پیدایش خود داشت چون از انبوه پرستندگانش و از پرستیده شدن میگوریخت و حکومت و اخلاق میکوشیدند که هر کسی وزنی ثابت و معین داشته باشد و تغییر وزن را نفریدون و قدغن کرده بودند به تغییر وزن را نفرین و قدغن کرده بودم و من هر کسی که به دوکانم می آمد وزنش را میکشیدم و به اون می دادم تا همیشه در آن وزن پایدار بماند تا با سنگ ثابت خودش بتواند همه کارها و کردارها را در رفتار سیاسی و اخلاقیش بسنجد و کسانی که از حقیقت پیچیده با پیچیدگی حقیقت میگریختند و کسانی که از حقیقت پیچیده یا پیچیدگی حقیقت گریختن ترادو برای کشیدن سادگی حقیقت میخواستند و با سنگ سادگی همه حقیقتها را میکشیدند و حقیقتهای پیچیده را به نام دروغ و باطل دور میریختند و آنهایی که شنیده بودند تفکر با شگفت آغاز می شود ترازوی شگفت سنج می خریده. و ترازوی شگفت سنج از هم چشم چشمها و باز شدن دهان را اندازه می گره. و آنکه با دهشت ناگهانی می دید، چشمانش گشادتر و دهانش بازتر بود از این رو می انگاش که او میاندیشد و آنکه ناگهان چشمش به کسی می افتاد که یک پارچه عاشقش میشد چشمی به همان گشادی و دهانی به همان بازی داشت و می که اوست که معشوقش را میشناسد و با این انداده ها ایمان خود را با آن ترازو و فیلسوف از دست داد ولی هیچ کس به دکه من نیامد ولی هیچکس به دکه من نیامد که از من تراذوهایی را بخواهد که نمایش میداد در هر شکه از خوردنی چند پیروزی نهفته است ولی هیچکس به دکه من نیامد که از من تراذوهایی را بخواهد که نمایش میداد در هر شکست از خوردنی چه اندازه پیروزی نهفته است از بار سنگین هر اندوهی چقدر سبکی بالها پیداش میآد؟ از هر دروغی یا افسانی چقدر حقیقت و از هر حقیقتی چقدر دروغ و افسانه میزید؟ و از هر عقلی چه بیاقلی ها و دیوانگی ها و از دیوانگی ها و بی ها چقدر عار میزید؟ هیچکس از من ترازویی را نخواست که بسنجد با چه اندازه شک و نیشخند و سرکشی می تواند از باورهایش بگسرد. هیچ کس از من ترازویی را نخواست که بسنجد با چه اندازه شک و نیشخند و سرکشی میتواند از باورهایش بگسرد. یا ترازویی که افضایش حقیقت را در اندیشه هایی که از یک دستگاه فکری یا دینی پاره می شوند و بی آن دستگاه هم بر پای خود می است هیچ کس از من تراژویی را که در کنج دکانم افتاده است و با آن می توان اندازه گرفت با چقدر از محدود ساختن خود می توان بزرگ شد با چند اندازه از تنگ ساختن دیدگاه خود می توان زیباتر دید با چند اندازه افضایش بار مسئولیت می توان نیرومند و آزاد شد با کاستن چقدر از تقواهای دینی و اخلاقی می توان انسان شد با چقدر از بی خدایی می توان خدا شد نخواستم هیچ کس چنین ترازوی را نخواست و آنکه ترازوی بزرگ شدن در دامن تنهایی را نمیخرید ترازوی سرگرمی در جمع را می خرید و هر روز که مقدار سرما سرگرمی های خود را جمع میزد مقدار کوچک شدنش نادیدنی تر میشد. و آنکه نیاز به ترازوی هدف سنجی داشت تا ارزش هدفهای گوناگون را بدانم ترازوی وسیله سنجی را می خرید و در سنجش وسیله‌ها با هم دیگر دیگر هدف برایش بیتفاوت میشد و به هر هدفی میشد با وسائل مناسب رسید و همه از من ترازوی دزدی سنجی را میخریدم و با آن با دقت آنچه از دیگران و با آن با دقت اونچرا دیگران از آنها میدزدیدند وزن میکردند ولی با آن ترازو سنگین چیزهایی که آنها از دیگران میدزدیدند ناکشیدنی بود این ترازو که برابری پاداش با کردار را نشان میداد نمیتوانست بسنجد که پاداش لبخند شادی را که از دیگری رووده چیست؟ بوسه ای را که از لب یارش به قارت میستاند چقدر میارزد؟ بوی یاسی که از دیوار همسایه او را سرمست میکند چه وزنی دارد؟ تصویر زیبایی که شاعر برای شناختن احساساتش به امیده است آیا بیش از هده است؟ و آیا متفکر برای افتخار فهمید شدن و پذیرفته شدن اندیشه های باریک و ژرف به او میدهد و آیا خنیاگر برای کام بردن از فراغت خودش برای او آهنگ میسازد و اگر از خدا معرفت و عبدیت را دزدیده بود دزدی از دریایی بزرگ بود که دزدی نیست و شبی نیز پس از بستن دکانم و شبی نیز پس از بستن دکانم کسی آهسته درم را کوبید و شبی نیز پس از بستن دکانم کسی آهسته درم را کوبید گفتم چرا اینقدر دیر وقت و چه میخواهید؟ گفت من خدایم گفت من و دایم و از بس که برای کشیدن ترازوی ادالت چشمم را بستهاند که دیگر روشنی روزها را نمیتوانم تا بیاورم من فقط خواهشی بس ناچیز دارم آیا ممکن است که حساسیت ترازوها را اونقدر بالا نبری آیا ممکن است که حساسیت ترازوها رو انقدر بالا نبری گفتم برای توک خدایی چه تقواط میکنم گفت با این حساسیت با این حساسیت های فوق العاده امکان تفاهمات میخواهم گفت با این حساسیت های فوق العاده امکان تفاهمات میخواهم به بسیار آشتی ها و هماهنگیها ها و نظم ها تا زمانی ممکنند که ترازوها اختلافات جزئی را نکشند کسانی که دیروز با قپان عدل را میکشیدند، اکنون همه کارها را با ترازوهای غیراتی وزن میکنند و آنان که دیروز از یک قیرات صداقت مست میشدن اکنون یک وقت اکنون یک خروار صداقت نیز آنها را بس نمیکنه. آنان که دیروز با یک کوه ایمان از من یک آن دیدار میخواستند، اکنون با یک ذره ایمان حکومت بر جهان را از من میخواهند. آنان که یک کتابخانه درباره من از هم و کتابی را که خود من برای رفع ملالت نوشتم، از خودم بهتر میفهمم و خود را به من نزدیک‌تر از و خود را به من نزدیک‌تر از کسی میدانند که مانند کودک خردسالی که هنوز الف از ب نمی‌شناسد مرا دوست میدارد و میانگارند که متخصص ایمان و خدایم و وزن معلومات درباره خدا را با وزن ایمان و دوستی مشتبه میسازند. و وزن معلومات در باره خدا را با وزن ایمان و دوستی مشتبه می و من از روی خدا شرمنده شدم و من از روی خدا شرمنده شدم با آنکه ایمانی به خدایی او هم نداشتم ولی حرفی را که به من زد مرا تکان داد و فردا دوکانم را برای همیشه بستم و فردا دکانم را برای همیشه بستم و دست از ترادو فروشی کشیدم چون من انسان‌های ایرانی یافته بودم که در درونشان نقطه‌ای بود به سنگینی یک آن چون من انسان‌های ایرانی یافته بودم که در درونشان نقطه‌ای بود به سنگینی یک آن که با حساسترین ترازوهای دکانم نمی شد دید و برداشت و کشید و از اون نقطه ناسنجیدنی ویوم و از آن نقطه ناسنجیدنی و بیوزم دریایی از مهر به جهان فرو میریخت